رادیو فیلم سن پترزبورگ نویسندگان پیمان و محراب قاسمخانی کارگردان بهروز افخمی زیگران محسن تابنده چند پیمان قاسم خانی مثل آدم که در چنگال یک دیو اسیر شدن بهاره رهنما و یک استعداد شگرف در زمینه تئاتر. شیلا خداداد آخه آخه چرا همه این اتفاقه برای آدم های صادقی مثل شما میافته اندیشه ی فلادون دن که ما در اکثر و بقی با هم هم سروش هستیم خودم نخریدم سلام از تایلند برما ورده و امین حیائی عطل، مطل، تو دوله حسن، موسیقی کارن همایون فر تهیه کننده حمید اعتباریان انتظار روسیه بود که سالها بر روسیه پهناور حکومت کرد. تا زمانی که انقلاب اکتبر در سال 1917 بساط حکومت تزاری را برچید و, برچی و کمونیستا به قدرت رسیدند. در جولای 1918 تزار نیکولای همراه همسرش آلکساندرا و فرزندانش در اماراتی در حومه سنت پترزبورگ به دست بولشویک‌ها قتل هم شد. گفته میشه که تزار قبل از دستگیری بخش اعظم خودش خودشو به صورت آلات و شمشای طلا در محلی پنهان کرده بود اون قصد اونا رو با خود به خارج از کشور ببره با مرگ تزار راز انگنج افثانه ایم همراه اون به گور رفت داخل تاکسی مرد جوانی که ریشو سیبیل دارو تازه از زندان آزاد شده به صندلی عقب به ماشین تکیه داده و خوابیده اون بیدار میشه و میگه چقدر شده باش؟ قابل نداره، قربونه دو تومان چقدر؟ دو تومان از این تا محل ما همیشه یه تومان موده کسی که خیلی وقت اون تو بودی یا نه، فقط شش ماه تاکسی میسته مرد جوان پیاده میشه کریم داخل کافه میشه به طرف مرد میانسار که کتوشنور پوشیده و اینک به چشم داره و در حال حساب و کتابه میره باره موسی و جوشیک مره اه, اه. کریم چاکری اه. تو خیلطرت نمکشی؟ که بخواید از از این کارو بردی؟ تو, تو فکر تو فکره ایچی نیستی نبه میدونم یکره تو بر بیشی یه چایی به گاتا برد بیارم این گاتا باید زندان میچسبه زهر مار خوب پدرت پدارت نمو دوست دارم آمون جورجی چطوری آرون؟ هم؟ دقا چی میکشه واری باریکلا تو چطوری پیره من؟ نوارم پره باره من نبودم خوب تمری کردی؟ نگی به بفرما به فرما میشینن و تخت نر بازی میکنن بوزتو میزنن زاده نشده بچین تاالیت کنن میخوای چاریچ به نفته دور؟ اول برو کتاب آمون باشه تقریباً خوب حفظ کن بعد بیا کلی بخون باز ما شیش ما نبودیم کوری خودمون رو از خودمون خوندی. بیدی با کریم سلام رافیک جون رافیک چای رو برسو ما این حالیش کنم اما میگم اینجا بد سوتو شده جمع میکردی یک کل بزی میزدی کم تو بیتر یک فکری با خودت بکنی تو فکر نشم غلط کردی ن ببین یه پیشنهادی برات دارم هم بفرما تو بچه همین محلی دیی با در دوستای ما بودن اون پدر خدا بیاموز تاج سر ما بود ای اون پدر چه بگو نقشت چی؟ جفشیش جفشیش ببین نه چه ازدک شما سو ببین ما بزرگ شدی بچه شهر محل بودی بری بچه بعدی نبودی دست از یه امتحان داشتم چرا که تو همین یه پیش خودم میگفتی بیشترم همون اما پرسلام هم اینو گفتی ya. فقط فرقی آورده درسته؟ تو چه بانکیش تو با کم؟ اون کد. ببین یه همچین مشخصه. من فضیات نکردم سراغوشان زمین. یه سفینه بایسته توشی. ببین من جز زنگ هایی کی کسی میاد؟ این که ورزش می چه زوری؟ یکی میخوام بدم اینو چه امتحانیش کنه؟ نه ایشالا نه. که الان هم بلو تو نیست تو. بیرون از کافه تصادف میشه. مرد جوانی که عینک دودی به چشم و کودی مشکی چرم به تن به طرف پیرمردی که اون با ماشین زده میره. کریم و مسیو هم به طرف اونا استیق میشن. آره هنوز زنده است. اوه مرد اسم این چوتاژ رانندگیه. بابا یکی زنگ بزنه آمبولانس بیاره. نه بابا این تو آمبولانس بیار ریغه رحمت سر کشیده. خدا میبرهمش. بریم شو مشکلش دیگه تمومه. اورژانس یه زوری در عقب ماشین رو باز میکنه و خودش پشت رول میشینه. تا میان پیرمرد رو داخل ماشین بذارن در می. مرد زرب میخنده و تیز میره کنیش به طرف ماشین میده و میخواد اونو نگهده اما ماشین نیست. کی... به طرف ماشین دیگه ای میره راننده ماشین نگه میده اون لبخند به لب داره درست؟ زیر لب پایینش یه ریش کوچی که مسلسی شکل داره زنجیر به گردن داره و سبوت سوا سب سب قرتی به نظر میاد اسمش فرشاده نمیره بمونه رو دستمون نه فعلا که داره خیر میکنه میکنم جان خودمی بمیره رو دستمونم با بنده تو کوچه بس کوچه برو قاضیشو بگی آرشیدو داری بیمارستان ها؟ آل شیدوکت نمیر به دستمون میرسیم والله. روز رومز داخل ماشینه فرشاله. ای ای آخه به ماشین, ماشین خوابیده. از گوشه لبش خون اومده و گونهش هم که راستش کبوده. میره برای یه لحظه چشمشو باز میکنه و از پشت موی سر کریمو میکشو بعد با انگشتش روی میخواد مطلبی بگه. کریم به تپیشو میرسیش میچرها و اولو نگاه میکنه و میگه چیزی میخوای بگی؟ چند چی؟ کنج چزار کنج کی؟ پیره مرد چشمشو میبنده مرد؟ دراتو برو در چه حاله؟ بابا داره میمیره تونتر برو آشیدون کریم یوشکی جیب کت پیره مردو میگرده تا میخواد پولشو برداره پیره مرد مردشو میگیره در روز با منی؟ فوش در روز در روز در روز در روز در روس، کجای در روس؟ آرشی دوگ آرشی دوگ آرشی دوگ آرشی دوگ نمیری پس میگه خودتی آره دو اون دو حرفتو بزن آدار شک که پیدات کردم نیکسه من خوشحالا بگو که هنچ کجاست بقا به دو سر خونی موتزت نیا میراز تدار جدید. بود از 2 می اوقاب روز. در روز. وقت داره میمیره. روز میمونه. شهر درست نشه. چه شری؟ جمش هم 100 تا شاهد قلا اونجا مشکلی شما این پیر تصادفی آوردین اینجا؟ بله بله. من آوردمش خوب خوبن الان؟ حال شما خوبه انشالله متاسفانه فوت کردن. ای بابا ای بابا اصلا سرنگیش رفید بخواهی فشارتون رو بگیرم؟ من تشکر میکنم بله آه. شما لطفا کروش کنید کلک فرشاد میگیره و با پرستور میره کریم برگه گذارش تصدف پر میکنه روز جلی بیمارستن زاره ممورین کریمو میبید و قایه میشه ماشین عوض کردن اگه پهلوو دیده باشی حالا که چی میگی آره بابا مرده مطمئنم که مرده خودم رفتم تو پرسه جو کردم جلو بیمارستان فکر نکنم چون تا اینجا رو بیهوش بوده من به تماس میگیرم الو کافه کریم آقا یارشیدوک موز حساب کنه. کنه. آره. یارشیدوک کوش رو می‌پیره، مرد میده و به طرف آشپزخونه میره و پسرش رو درو قوش میده. سلام کریم جان. همون جورجیک حالش بعد چا دیگه نمیتونه صحبت بکنه. ما تو خیلی ماندنی. لطف کردی عزیز جان. خب البته بنده خدا سنش بالا بود و عمر خودشو کرده بود. آره. ببینم کریم جان تمام مدت که میبردیش بیمارستان بیهوش بود یعنی اصلا به هوش نه هزیون میگف آقا ولی خوب بیمارستانی بود رسیدگی میکردن انصافه <stis> <laughs> رونس داخل ماشین فرشود کریم داخل ماشین هستن ببینم این یارو خدا بیامونس شنیدی چیگو یا نه چیزو خواستی میگفت اصلا دم مرگ بود دیگه پرت و پلا میگو قبول داری میگن دم مرگ پرت و پلا میگن اصلا ولش کن آلگیری بود آلگیری بود آره من میرم سینما یه فیلم ببینم بلکه حالا یه خوره جوابیه در فکر این بابا بیم میرون خوب فکریه اگه میای بیا با هم بریم نه قربت برم من آ... بعد برم کتاب خونه رو پایان نمام تحقیق برم من دانشو فوق هم ماشین کنار خیابون کریم پیاده میشه میره این سریع از پله های پل آبر پیاده پایین میاد و به طرف خیابون میدوه و تاکسی میگیره تکسی پیاده میشه لحظه میسته به طرف مسکن 222 میره و داخل میشه لحظه‌ای که شما رو دیدم حد که تو کار زوغی هستید شرط می‌بندم هنرمندید اختیار دارید. هر از گاهی سازی میزنی ولی صبح در دردید آدم تو شغل ما یه پا روانشناس میشه بله بله سی سال به مردم خدمت کردیم اون وقت آقای معتزدنی هم همین جا بودن دیگه منصور معتزدنی بله گذر فروردین پلاک 756 ببین من چه حافظه ای دارم بله بله بارک الله واقعا پریشون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنن اه اونارو بخشیدن به همسر آخرشون خانم کتواینی خانم مرتضی خودشون هم رفتن خانه سالمندان روز خانه سالمندان مطب دکتر پیرمردی مردی اتاق انتظار مطب نشست و دندون مصنوعش رو نگاه میکنه و تو دهنش میذاره ببخشید شما با من کاری داشتید جناب سرهنی؟ اله کار داشتم یه دندونام خیلی اذیت میکنه یه دست نزده خودش میگذید باز دندونای آقای شمس اشتباهی برداشتی؟ خواهش میکنم همچین چیزی نمیشه بلند بلنشید برید دنبال آقای شمس پیداش کنید دندوناتون دهنمونه نمیشه همچین چیزی بند پاشو پا آفرین. پاشو ببخشید معتل شدید خواهش میکنم مشغول سرکشی بخش بودم شما ببخشید که من بدناقه مزمیم شدن همچین چیزی نمیشه تو تفلی ببینید به چه روزی افتاده یه روز روز باش جناب سرهنی بوده نه سرهنی ایست حیاتی داشتی فاملیش جناب سرهنگ خوب چه کمکی از من ساخته راستش من تازه از خارج از کشور اومدم اومدم بستگانم رو ببینم شنیدم که امویی بنده اینجا تشریف داره این که گفتم یه سریع بهشون بزنم برد می بسیار کار خوبی کردن نمیدونین که این تفلی ها رو میبرن چقدر نیاز به این کارا دارم و این ملاقاتا چه تأثیر طور روحیه اینا سر؟ خب به من بفرمایید ببینم اسم امونتون چیه؟ آه... جنای نیا. من خودم معتزدنیا هستم شاهین نیا. آه... خیلی وقت بود ایران نبودم تازه برگشتم من که نمیدونم چی بگم همینقدر میدونم که خیلی عجیب آره خیلی عجیبه اومدن شما از خارج اومدنتون امروز به آسایشگاه بله بهتون تصدیت میکرم بله آقای محتزید نیا همین دو ساعت پیش فوت کردن مرد؟ یعنی فوت کرد؟ بله متاسفانه در این مدتی که ایشون اینجا مهمون ما بودن هیچ کس ملاقاتشون نیمد هیچ کس آخ, آخ, آخ. مهم نیست خبتون رو ناراحت نکنید مهم اینه که حاکت پاریش بیکس و کار انجام نمیشه شنیدین که جنازه میگن رو زمین نمیمونه بله خیلی مهمه چون میدونید بوجه که ما برای اینجور مراسم داریم خیلی محدوده که به آمدن شما دیگه قضیه حل هم. بله امروح آزد شدم چای کری <Reid> خانواده خوبه انشالله آب جی محترمه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نه بابا از خریه دارم اول پرسی میکنم خودت خوبی ناسه جون قربانه آقا یه سال ازت داشتم من چقدر بده کار بودم ببینم. یه لنزه من مقا پسرمه نه رفیقمه من دارم با رفیقم حرف میزنم. الو ناسه جون چقدر قربونه صاحبش قابله چاکرین. یه کنی بیشتر نبو داری تعارف میکنیم آقا پا یک کاری کن بکنیمش دونیم به جان ناسه الو مرد دوباره میاد. آلو آلو یه لحظه ببینم آقا پسرام نه بابا من دارم با رفیقم حرف میزنم خب چشم منم باز نگاه کن. چی شده؟ ببینم مرد که پوف شما فکر میکنه من ساده پسرامو نمیشناسم. شما همش داره با من بازه میکنه. آلو. مرد میره. عمو جورجیکو نه چیزی نیگه یارو رو معلوم نی با خوش چند چنده آره آقا من امادم اونجا تصادف شد و حرف تو حرف شد یادم رفت بگم یه تومان پول میخوام یه میلیون مل... آه قربونه چاکری آره نه پرسی که خود که وضعیت ما رو میدونی اون پیرمرد دوباره میاد آره آره یه لازم ببینم آقا پسرمه امو جورجی یه با این بابا حرف زمان رو کچل کرد آره آره بسرته بیا بگون نیستش دیگه حوصلشو ندارم الو همون زهرا مزار متزدنیا کریم روی صندلی کنار مدده نشسته کریم به طرف ادهی که تاج گلی به همراه دارن میره و با یه نفر روبوسی میکنه و تاج گلو میگیره <تصفح> ما منترا یار گل فاطمه طلبوا چون که چگاش دیما تشفون تا شکاست ای خاجه دیره دلبر ما را ازی ساز ای خاجه دیره با تو عمر به ما را گوش کو این منصور موت یادگار از خودش باقی گذاشت اونم برادر زادشه چه کردین اموی بابفا در زمان حیاتش چه کردین اموی بابفا چشم. چشمان شما را فرشود گریان نزدیک میشه و خودش روی قبر میندازه من خودش روی قبر میندازه رو. همدیگر رو بغل میکنن دکتر میرم میشین کریم و فرشد همدیگر رو بغل میکنن و مثلا های های گری می کنن و آماده است بفرمایین تشریف ببرین سوارشین در خدمت تو هستیم کلن فوت! حکوم قرید نشه مجلسو بگردم که پسر مرحومم رسیدند و نمونه <بصل> تو اینجا چه کار لاتی میکنی؟ ما اینجا چه کار لاتی میکنی؟ تا گورا جان آموز. باید چقدر تی دومت اموزه رکوله میزان بیچاره. ما اینا میشانم دهامان تو سر بیسم ای آموز جان. پدر جان پدر. بگیریم میزارم میروسه تصورات اینوی ماله بکشی. مالیت. تو اینجا چه کار لاتی میکنی؟ بهم میگم. هفتاد سین پنجا پنجا چه؟ سک خورم اونجا سالمند این تمام اموال شخصی باقی از مرحوم معتزدنی هست همین نخیر بازم هست نیفم تو از ای ای؟ این وسیله چی کار اسانی؟ که بابا یه هشتی زدی بشه دامش در. یارون ماش که فقیعون جامش کنیم گنج ماال منه. مامرسون دامش. سنتلیاگان ماشین هم اب خونی شده هر روز باشه ولی گفته وشم پول ما رو سمنس سمنس میام. میدم دکتر کفش اینم هست. خدمت شما نمیدونم طاقت دیدن دیدن یادگاره پدرمو دارم یا نه من از تک تک اینا خاطره دارم فرشان در اجابه کفشو باز میکنی آخ شورت همون شامپون ساعت مصفاق و چشم نظر داخلی اون یهمی ناممون فقط همین واسش مونده ملکی املاکی عقاب دو چیزی روز داخل ماشین فرشان این خودی چیجوری جوری خودمون اسکل کردیم گنج کجا بود تو این دور زمونه والله طرف تام علی حذیونی گفت ما رو به کوچه رد جدی گرفتی بی خودی خرجه تفن و کفنمون سر کردن <تصفح> خرجه حالا هرچی آقا این پیاده میشه. مخلصتم. خیلی خوشحال شدم استاد. جام 500 رد کنم بیاد بالا بجون. یه میلیون تومن خرج تفتن تفتن یرم شده. نیست میکنه 500. رد کنم بیاد مخلصتم هستم. خداشکر دیگه انجا پیدا میکردیم بیشترم بتمیدم. الان شهرمندم به خود دستم خیلی اعداد انا یوز روزت معلومه داری بجون. بزوی حقیقت رو بهت بگم ماشین مال من نیست راستش. مال نام زدمه. من خودم آشلاشم باور کن من بگه ده تنال بونتو جیب بی بگه بی بگه نمی سینما یه فیم ببینه بلکه سوزشم بردرفشی می خواهی بیا بریم نه قرار برم من آه... کتاب خونه برم فرشت حرکت میکنه اون عصبانی و میگه تا سالهای سال دولت شوروی همه جا رو برای یافتن گنج زیر رو کرد اما اثری از گنج پیدا نشد آرام آرام مردم قانع شده بودند که ماجرای آن گنج افسانهای بیش نبود اما این همه ماجرا نبود شورای سلطنتی روسیه یک گروه مخفی ضد دولت شوروی بود حاشیه مرکزی این شورا توی پاریس بود. اونها نسلاً در نسل نگهبانان میراث تزار بودند. کمتر کسی اینو میدونه. در 1974 مامورای کاگبه تا یک قدمی کشف این راز تاریخی پیش رفتند. درست در آخرین لحظه میراث تزار با کمک دیمیتری شاستاکوویچ، آهنگساز بزرگ و عضو ارشد شورای سلطنت نجات پیدا کرد. او این میراث رو از شنگ منورا درآورد و از روسیه خارج کرد شورای سلطنت تصمیم گرفت گنج تزار به پاریس منتقل نشد اونها این گنج رو به محلی منتقل کردن که به فکر احدی هم نمیرسید. ایران کافی شاب <بالتار> فرشاد کافی شاب میشه با و با بیخیالی و سبکسری را میره اون به طرف میزی میده که نامزدش پشت اون نشسته و منتظره میخواد باش دست بده اما رانا که در حال زمزمه کردن آهنگ پخش شده است قاشق چای خوریش رو داخل فنجون میبره اونو پر میکنه و میپاشه رو صورت فرشاد فرشاد خوشش میاد و سرش رو تکون میده رانا فنجونش رو هم میزنه و هورت میکشه فرشاد موبایلش رو روی میز میزنه رحنا موبایلش رو برمیدار و توش رو نگاه میکنه خوبی عزیزم با تو که هستم خوبم پای سیب بخور پای سیب دوست ندارم جوراوت شستی فرشد میگم یه چیزی توی موبایل داره عذیت هم میکنه چی؟ یه شماره است که نمیشناسمش ایفا ببین ما میخوایم یه عمر با هم زندگی کنیم این اعتمادی عذیت تموم میکنم تو اگه جای من اعتماد داشتی؟ با اون همه دروغی که ازت شنیدم با اون سابقه درخشانت تیه اون تو خودت به من بگو از تو بهتر کیو میتونم پیدا کنم خوشگل، هنرمند، فکر، خوش اخلاق پرشت میدونی تو با بقیه مردا فرق داری تو خیلی خوب منو درک میکنی من اصولا خوب درک میکنم این وسط تویی که داری ضرر میکنی من جا تو دمیزه بیشتر فکر میکردم رو میده آی میکوشمت منو میپیچونی پرشو داره نه بجان عزیزت ببین من که تو آخر عمر بیخریشتم اون فیالت راحتمن منظورایی بودش که من چقدر خوشبختم که بین این همه کیس های خوبی تو یهو <تص> پلک سمت راست و اینو بعد پلک سمت چپش میافته. با دو دست شقیقه هاشو میگیره قرسی رو از جبه کوچیکی در میگه تو دهنش میزه رو گرچ و گروچ میجوره پرشد از هر گرد شده زن به با سر و صدا و بیده و لبخند میزه چیزش؟ داشتی میگفتی عزیزم؟ من داشتم میگفتم که آه... یادم رفستم داشتی میگفتی اون شماره تلفن مال کی بود؟ <تصفيق> <تصفيق> روز داخل ماشین فرشاد فرشاد تنها داخل ماشین نشسته و داره سندیویشو میخور و مرتب آهنگو عوض میکنه و منتظره در فاصله پنج و شهست متری در پارکیگ حیات خونهی باز میشه فرشاد خوب نگاه میکنه سرایدار به طرف ماشین قرمز مدل بالایی میره در اونو باز میکنه و سوار میشه و ماشینو از تو پارکینگ میاره بیرون سرایدار از ماشین پیاده میشه فرشاد دندقب میگیره دختر جوان قرمز پوشی سوار ماشین میشه کریم یه میاد و سوار ماشین فرشاد میشه ببینم شیگور تعداد پاینامه خوب پیش میره؟ به چه؟ اصلا کیب به شما انجاز داده سوار ماشین بشه؟ فهمیدی؟ بهت چه که بخواد دور بزنه، کریم، بذار من بدم. کریم چنان به عینک دودی فرشاد میزنه که یه شیشش میپره. فرشاد در ماشینو باز میکنه و شیشه عینکشو در درو میبنده. سرایدار از جلوی در خونه با تعجب به اونا نگاه میکنه. اونا حرکت میکنن و ماشین قرمز و تعقیب میکنن. وحشی. <تصفيق> <تصفيق> یارو رفت. اون ساله. قرمز کنار خیابون میایسته. دختر پیاده میشه و به طرف ساختمونی که تابلوی نامعلومی داره میره و سنگ میزنه و داخل میشه. اونا از کنارش رد میشن و درست اون طرف خیابون روبروش میایستان. فرشاد از ماشین پیاده میشه به طرف ماشین قیرمز میره کریم با نگاه دنبالش میکنه و با دهنش صدا در میاره اصلا ما چی میدیم دنبالش؟ چی کار کنیم بس؟ آقا به دو که با خودش نمیبره لابود تو خونه هست دیگه میدونم وای میدونی باست چی میدیم دنبالش؟ بریم خونه هست؟ ببین روش من با روش تو فرق میکنم من دیوار مردم مالا نمیرم دیوار کن البته بگم با همین سادگی هم نیسته من صبح خونهشو دید زدم دو تا سگ داره اندازه اولاق دوزگیرم داره یه باقبونم تو هایاتش ویل داده ویل داده بود باقبونم توی ویل میچه خیداست خودش دیگه فرشان تک سنگی بر به طرف موشین قرمز میره چراغ سمت چپ عقب ماشین میشکنه و سنگو به کناری میندازه و به طرف کریم میاد شیم. کریم روی صندلی عقب ماشین دراز کشیده و خوابیده آلکریم درمه خونه شاد آدامس می جو منتظره کریم بلند میشه دختر جوون قرمز گوش یادداشت و میخون و با تعجب بر هم زنان به سمت عقب ماشین میره شما رو من نمیگیره نگاه ایجا هلو گود مورنینگ آقا شما زدی به ماشینه من فرار کردی؟ روزتون بخیر خانم چقدر از شنیدن صداتون خوشحالم نگران بودم که اون یادداشتی داشتی که براتون گذاشتم پیدا نکرده باشید یعنی چی آقا ببین چیکای کردی ماشینو باسته من یاد داشت بیذاری؟ من کاملاً حق رو به شما میدم من واقعا یک لحظه کنترل اتومبیل رو از دست دادم یک کودک پرید وسط خیابون و من مجبور شدم که برم توی اتومبیل شما. هیچ چیزی سنگ در میاره. به اتفاقا من یه مدتی هم کنار اتومبیلتون ایستادم منتظرتون شدم که تشخیص بیارید ولی از بیمارستان تماس گرفتن با من و گفتن که بیمار اورژانسی است مجبور شدم که صحنه تصادف رو کنم. من فرضش کردم که خودم معرفی کنم خدمتتون دکتر حسابی هستم فوق تخصص جراحی زیبایی از دانشگاه بارسلونا میگم آقا شما که دکترین اخ حضرتون بعیده ببینید چه بلایی سر ماشین من آوردید بازم عذر میخوام ازتون و ازتون اجازه میخوام که خدمتون برسم و اتومبیلتون تحویل بگیرم و مثل روز اول تحویلتون بدم مدت اتومبیل خودم و در اختیارتون قرار بدم که بی ماشین نمونید آه نه خیلی ممنون خودتون لازمتون میشه نه بابا خانم من اتومبیل زیاد دارم در ضمن این حد حداقل کاریه که از لحاظ اخلاقی من موظفم که انجام بدم باشه آره بیچاره خیلی ممنون ضمناً جسارتا میخوام خدمتون عرض کنم که اگه میدونستم بانویی که باهاش تصادف کردم صدای به این زیبایی داره قید بیمار اورژانسی رو زدم و میموندم اوای ترى خدا نگیرین انطوری بیمار ارجانسی خیلی مهمتره با با خانم چیزی که زیاد بیمار اورژانسی خانم با شخصیت مثل شما کم میشه من پس امروز بعد از ظهر اگر از بفرمید خدمتون میرسم به اومید دیدارتون آقای دکتر بی سبرانه منتظر دیدارتون هستم تا بعد از ظهر. از دوستم داری؟ نه نه نه, نه دوستم داری؟ خوبم بل. یا نه؟ از منم بیشرفتر در برم بخو بخواب ماشین دروز از کنارشون رد میشه حرفش سرشون نمیذاره خب خوب گذشت عرض کنم به خدمتت که خب دیگه پس تو پیاده شو الان برو به زندگیت برس من عصر میرم خونه این کتی خانم عقاب دو سرو سر میگیرم ولالمشام میام بهت زنگ میزنم خر گیر آوردی تو بدون اجازه من هیچ جا نمیری هر جا بدین با هم میری شو حرفی میزنی خب من تو رو بردارم اونجا برم نگم این نرخر کیه من آوردمش به ایناش به من ربطی نداری دارم میگم هر کاری بکنیم باهم هم برد بختی داری من دست تو خیلی خوب پس باهم میریم اونجا بعد من تو رو سرکوچه پیاده میکنم ول بچرخ اونجا من میرم خونه که اتخانم اقابه میگیرم میکنم. خیلی بیشوری دادا شما محل ریکس نیستم جان جان اهل چی نیستی؟ یه من ریکس نیست خیلی اوشگولی ریسک ریکس چیه؟ ببین بچه یه وقت پاد رسید به زندان جایی ریکمیک نکنی یه کار دست خوید میدی ببین خدا شکر من نه تا حالا پام به زندان رسیده نه قراره برسه حاله ریکس فرشان یاد زندان میافتید من مرگ سیاه من آن مرگ سی گریزن آشیان از من نه من از آشیان خوشحالم و نه آشیان از من, آشیان از من. همینجور واسخوه چپ و راست نریفت زندون او لفظه چپ جنبی میبینی دفتی زیر تو اونا منم میگم نریفت آقا هرچوا بود این دفعه میخوام ریسک کنم چیشو <تصفيق> آقایون تعرز نمی کنیم به این رفیقی منا حواستون باشه آقا تو دهنش حرف نچرخیده لفت شکریه بچه با مزدهیه حرف دانش نچرخی قبرتون برم هرچی هم نارتا با من طرفه حالیتون شو آشان حالیتون شو سرشو تا زندان از سرش بپری خب پس با هم میریم بریم خونه ما ونه تو واسه چی؟ میگم والله. ماشین رو روشن میکنه و میره. حیات جامعه آپارتمان فرشافت. چی میگه؟ چی بابا رفتیم یه ماشین کار بگیریم گرفتنم. البته اتفاقی آوابینه و کارمون بلدیه. معلومه. تو چی؟ دارین شونه شو خالیه دیگه. مثلا مثلا مثلا. صنایع غذایی واحد جنوب فوق لیسانس. اگه به کارت باشه که من 10 لیسانس دارم. تو با خر که زندگی می‌کنی آره؟ چطور؟ همینجوری داشتن فکر میکردم که تو که زندانی نی، تفلک تنهاست. تو چرا آتیله رو؟ خواستم یه حرفی زده بشه. نگوس. حالا این شیر موازه می‌شم. کاه اون میره خونه حالا داریم اونم اونجا. ای طفل معصوم. اوه, اوه، خونت دو دوز زدی. چرا؟ چیزی کمه مگه؟ ها نه مدلش این. بیا. چیزی میخوری؟ این چیزی پیدا میشه آره آره یه پیتزا داشتم اینجا آه اینا بیا مال روزه ولی توش بزنی خوب میشه نه شده تو خجالت نمیگی تو این تبیله؟ یه خانومی از شنبه ها میاد اینجا تمیز میکنه بعد این هفته مریض بود واسه همینه که اینجا این شکلیه اینا نقاشه یه باورت میشه کسایی میخرنشون حالا ما اومدیم اینجا چیکار کنین؟ میخوام شبیه آدمیزاد بکنمت. فرشاد پیشبند دور گردن کریم می‌بنده و میخواد اونو اصلاح کنه. خوشک دوستریه با کف. در آپارتمان باز میشه. فرشاد می‌بینی کت و مشکی، کراوات و عینک دودی به چشم داره. کلوشوشوشو روی سرش می‌ذاره و اونو تنظیم میکنه برمیگرده و به کریم اشاره میکنه که بیاد کریم ولی یه لحظه سرشو از پشت دیوار بیرون میاره و بعد آروم به سمت فرشاد میاد اون درست مثل فرشاد لباس پوشیده با این تفاوت که ریشو سیویلش چنگیزیه هر دو خارج میشن و درو میبندن از پله ها سنلانه سنلانه پایین میاد فرشاد دست به جیب میبره سوئیچ ماشین رو در میاره؟ شو فشار میده هر دو سوار ماشین میشن و را میرفتن محمود معتزدنیا پسر سفیر سابق ایران در روسیه فارغ و تحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه سوربن و دوست و معتمد شورای سلطنت روسیه امارت مجلل مرتضی نیا در محله در روز مقر جلسات مخفی مخالفان رژیم شوروی بود شورای سلطنت وظیفه حفظ میراث تزارو به عهده مرتضی نیا گذاشت او این وظیفه خطیر رو تا زمانی که به دلیل آلزایمر به خانه سالمندان وابسته به کلیسای سنت گلاس سپرده شد به عهده داشت روز در روس در خانه دختر قرمزپوش فرشود کریم پشت ما جلوی در ایستادن و ما نیم تنه شون رو می‌بینیم. حالا روبروی هم می ایستن. گراتسیا سینیوریتا. کارسیا سِن دِرتیتا. گراتسیا سینیوریتا. کارسیا سمولینا گومبالینا. خداییش اینی که تو گفتی اصلا شبیه اونی که من گفتم بود؟ آره شبیه کورت کورتا یک کاری میکنیم من حرف میزنم تو هیچ چی نکن آقا اسم از این غیرتبازی ها خوشم نمیاد یه لحظه میرم تو آقا به دو سر میزم زیر و قلم می بیرون همین آز میخوای گیر بیفتیم خوهر دستگل تو تنها بذاری بیرم تو چی کار داری به خوهر من کاری ندارم اینجوری چیزی گفتم که یک چیزی گفته باشی آ قبلا هم اینو یه بار گفته بودی. تو هم راجع به خواهر من حرف زدی. دیگه کن کریم یه چک به پهلشاد میزنه. اینا که اون در باز میشه و سرایدار میگه؟ آره وحشی. سلام خیلی خوش بفرمایید. اونها وارد حیات میشن. سگ قلده به گردن کنار در نشسته با دیدن اونا بلند میشه و پارس میکنه. بفرمایید آقایون بفرمایید. فرشید کریم به هم تنه میزنن که بالاخره یکی بره. و کریم با ترس و لرز از کنار سگ میگذره. روی پله ها سکندری میخوره. وارد خونه میشه. اما فرشید وانمود میکنه که اصلا نمیترسه. و تازه به اصرافم یه نگاهی میندازه و عبور میکنه سرایدار در رو میبنده پشیف بیارید شد و کریم هاجو واج به, به سالن نگاه میکنن سرایدار میگه پشیف داشته باشید الان خانم میاد. هر دو تو پذیرایی روی موبل میشینن ها عینکشون رو برمیدارن ماشون رو مرتب میکنن و به اطراف نگاه میکنن مبلمان و پرده ها و مجسمه ها خیلی شیکن فرشان یهو به زیر میز اشاره میکنه درست به اندازه میز کف زمین از شیشه است و اون زیر استخ رو میشه دید فرشان. گفتم خفه نیست چه؟ یه مردی که بکنم اون نظرت خواه مدفع شد استرخه استرخه استرخه اوشکون استرخه خدا کنه فقط به زندان وانشه کافی اونجا به یسترخه ببین من برای نشی باید نفتم زندان من زرنگتر از این من نه پام به زندن رسیده نه قراره برسه خیالت رایت آهی می یه به زندن من آن مرگ سیاه اخبالم من آن مرگ سی اخبالم این لامستقا چون رایچه این کلیدرها رو بحانه می کنن ای گفته تو هواچی می چزله آخه، شهاب زرش و شروط آبی نور چه حالی میدیم، اگمت چه آ؟ بوله، آقا، من به تو بگم چی میشهست به استر بازه؟ بازر؟ <م être م AsíPre> آی آی آی آی آی آی آی آقا یون، ای آقا به سر تحت نداره منه تحت حمایت منه بهتون گفته باشم حالا، باز به سوندفه هفت دانش نچرخی یکنه اشتباه بو. بود آن؟ هر کس با من طرفه آبا تو به خورستر جون فرشاد محتم چشماشو به هم میزنه سرشو تکون میده تا خاطره زندان از سرش بپر کلفت جوانی چاقی که لحجه شمالی داره براشون چای میاره پذیرهی میکنه و گرگر کنن میره کلفت تشکر میکنم آخی رتوی ده سیبله همون دختر جوون قرمز پوشی که و گوشوارهای گرد بزرگ گوش داره از پله ها پایین میاد و به طرفشون میاد کریم و فرشاد به پش بلند میشد فرشاد تنظیم میکنه و مثلا دستشون میاد. خیلی خوش آمدین بفرمی خواهش میکنم سلام بر بانوی دریا و علف خواهش میکنم بفرماییم بشینیم خواهش میکنم کریما فرشاد میشینن و زن با شیفتگی به فرشاد میبینیم شما خانه بسیار زیبایی دارید سینیوریتا کتی چشماتون می میبینه گفتین تخصصتون زیباییه من فوق تخصص زیبایی و جراحی پلاستیک هستم از دانشگاه نیو کمپ بارسا اون وقت متبتون کجاست؟ Uh, من uh, فراموش کردم خدمتون ارز کنم uh, ما مقیم ایران نیستیم ما اسپانیا زندگی میکنیم اومدیم اینجا برای شرکت در چند تا سمپوزیوم و سخنرانی در چند تا کنگره و یه دوره آموزشی کوتاه براتون از پزشکان ایرانی میذاریم و در 15 روز دیگه برمیگردیم بارسلونا من فکر میکنم شما دکترای خیلی معروفی هستین که دعوتتون کرده تعریف از خود نباشه ولی من بهترین جراح پلاستیک جهان هستم و رئیس دپارتمان جراحی پلاستیک دانشگاه نیوکمپ بارسلا دکتر کاخال هم که در خدمتشون درسیه. هستین بزرگترین متخصص پروستات جهان هستند در واقع پروستات به نوعی مثل مومت دستشون میمونه بامالی کورتا؟ اوکی آقای دکتر میخوان که از دستشویی شما استفاده کنم. بله حتما. هم بالا دستشویی هستم پایین. لوئیس نازاریو د لیمبا بامبالینا دپورتیو لا کورونیا. لا کورونیا. کریم ادای احترام میکنید و یه کریم یواشکی به فرشاد اشاره میکنه که میره توهی بالا. ای دکتر میگم شما لیفتینگ هم میکنید من اصلا کارم لیفتینگ عزیزم همین جدیدا خانم نیکول کیت منو اساسی لیفتینگشون کردم پوستشون یه مقدار چروک داشت صاف کردم براشون این بین خودمون باشه ایشون میدونید پنجا و هفت سالشونه نه دروغ میگین اینا جزو اسرار پزشکیه نیکول دوست نداره که همه بدون سن واقعیشو حتما حتما مطمئن باشین فقط بین خودمون دو تا میمونه کریم از بالای پله ها خونه رو وارسی میکنه در اتاقه رو باز میکنه و داخل میشه بله اغاب دو سر اونجاست محوه تماشاش میشه به طرفش میره اونو بر میداره و بغل میکنه و میبوسه آنه چطوری؟ گیره سرای پای میشنوه مجسمه رو میذاره و قایم میشه سرای دار داخل اتاق میشه روی تخت خواب میشینه و گوشی تلفن رو بر و شماره میگیره الو بله اینجان ممکنه دیده باشه بلاخره یا دیدن یا میبینن دیگه درست کریم که فالگوشی ایستاده بود تا میبینه زن کلفت میاد به طرف دیگه میره و مخفی میشه کلفت آقابه به دوسر رو بغل کرده و با خودش حرف میزنه در رو میبنده رد میشه از پله ها پایین میره کریم هم به دنبالش از پله ها پایین میره اما کفشاش قش قش صدا میده ناگهان آواب دوسر رو میبینه به وحشت اشاره میکنی که دو تو از این مجسمه هست یا ووشکی مجسمه رو به فرشاد نشون میده. چشم ابرو نیستقا داتر این اشتباهی بود که قبلا پزشکگاه میکردن ولی مشخص شد که در دراز مدت مانکلیفت پس میشه چش کج بشن به خاطر همین الانمانکلیفتتو برای منطقه هم منطقه کار میبرن اصلا هم کش نمیشه واقعا ما از علم دنیا عقبیم فرشاد دهنش از تحجاب باز میمونه البته همه میدونن که خب ایرانی ها ترین آدمای دنیا هستن الان دانشمند شماره یک اسپانیا یه آقای هستن به اسم پروفسور باغرزاده تو رو خدا ایشون به کشفیات خیلی بزرگی در زمینه ریاضیات ناعلامدان مثلا چی مثلا اینکه ایشون کشف کردن که بین 8 و 9 یه عدد وجود داره چاله بله اون وقت توی دنیا این عدد رو به افتخار ایشون اسمش رو باقرزاده الان عدد الان به این صورت شمرد میشه 6 هفت، هشت، باقرزاده زاده 9 10 اصلا آدم تو این جور مواقع به خودش افتخار میکنه بله این جور لحظاتی که آدم به ایرانی بودنش میباله کتی حواسش نیست کریم اشاره میکنه که تیر پایین از پله ها پایین میاد و کولفاطو میاد از کنار ایستخونه اصلا نمیخواد. یهو کولفاطو. بمبالینا طرفه. به از پله ها بالا میره. کریم مثلا داخل دستشویی میشه که زیر پلهاس هاست و درشو میبنده وقتی مطمئن میشه که کلفت رفته درو در باز میکنه کریم کنار استخر راه میره کفشاش قش قش صدا میده گرینگ کفشاشو در میاره توشو نگاه میکنه و دوباره میپوشه اما باز صدا میده از روی پیشخون یه اسپری بر داخل کفشاش میزنه اما فایده ای نداره بازم قشقش قشق صدا میده درست لبه استخر دوبه میشه و از سقف شیشه استخر فرشادو میبینه که داخل پذیرایی رو نشسته. فرشادم کریمو میبینه اما بروی خودش نمیاره بلند میشه و به طرف کتی میره کتی چشماشو به راست و چپ میچرخونه ببینم چشتونو بله همونجور که ارز کردم خدمتون برای افتادگی پلک شما خیلی جوان هست دنست چشتونو ببندی لطفا تا کتی چشمشو میبندی پایینو نگاه می‌کنه کریم ناره تو آب دست و پا میزن و غرق میشه چی شد آقای دکتر دکتر کاخال ایشون جراح خیلی زبردستی هستم ولی به نظر میاد شنا ولد نیستم به سوعت به کتی بلند میشه و کریمو ببینه که باز روی آبه و چشماش خیره است. فرشاد میپره تو آب و سعی میکنه کریمو نجات بده کتی به اونا نگاه میکنه و خندش گرفته سرایدار در خونه رو باز میکنه و فرشاد و کریم که هر دو تیشرت و شلوارک به دارن و لباساشون داخل نایلون تو دستشونه به بیرون راهنمایی میکنه سک. به اونا عزیز ما که از بودن با شما سیر نمیشیم ولی باید بریم متصفه بقید اگه لطف کنید و مبلغ خسارت رو به من بگیم دیگه ازت ناراحت شدم دکتر منو انوش صدا کن کتی انوش ریان این حرف ها تو کلاس من نیست اصرار دارم خب فردا شب تو تاعت رزت میگیرم من که هنوز نگفتم که دربت سا قبول کردم ولی قبولی. به شرط اینکه به شرط اینکه چه ترسی؟ بعد از تاعتش بیای با من شام بریم بیرون خیلی هم آلی چون من بعد از تاعتش هیچ برنامه ندارم خباله داشت خبش فرد و شب میبینم حتی؟ میبینم ات آدیوس بیرون آیا چون میچک آکی روز داخل ماشین فهر شد کریم و فرشاد با همون لباس های داخل ماشین هستن آقا چیکار میکنی تو؟ بابا اینجا محلمونه یکی این ریختی من رو ببینه آقای اصیحتمون میره خب با اون صندوق لباس دارم به میدم این حرکات گند گنزه تو ماشین؟ من نفهمیدم فقط چی شد قرار بود اونجا یه آقا باشه 100 تا آقا بود اصل کار و کدوم بود من نمونده کاری نداریم فردو شب که رفتی خونکتی همه رو اه؟ اون وقت تو چیکار کنی میشینی با کتی خانم تاعت میبینی؟ تخمه میشکنی؟ ناراحتی تو ورد کتی خانم به بعد تاعت؟ من میرم خونه آقا برو برمیده لازم نکرده میرین خونه ما میرین خونه شما؟ ببین یک فکر کردی من تو رو تهنامی زارم کور خونمم اصلا نمیتونم کشی میکی چی؟ اومدیم و من پیاده شدم تو رفتی شبم هم رفتیم اونجا اون وقت چیکار کنی؟ آدم بددلی هستی تو ما دیگه رفیقی ما هم شریکیم نسلامتی شب میدونی خونه ما خوهرم که شب خانید کنم کریم درو بروی پرشاید میبنده زوره زوره سلام کجایی سلام داداش الان میام ببین فقط یه چی بکش رو سره تا مهمون یا الله بگو تشریف بیارن که این مشهدی پس بیاد دوره خاله کجاست؟ نهی تو دکه بکر... و کیفش نهی تو بود درمیگه دوره میگم خاله کجاست؟ خونه خاله یعنی چی میگه که نبود بیاد نوزه تو باشه؟ ببخشید میگم برنامه شما از این به بعد به برنامه شما تنظیم کنه. چه تازه ارث دم و خاندانش تو؟ این چه کیه فیه؟ خجالت نکشیدی اینجوری اومدی تو محل چه چه خجالت بز میکشه؟ میکشی اولا دوو من تصمیم گرفتم و الان یه آدم دیگه ای باشم. حالا بذار یه هفته بیرون باشی یه هوایی به سر بخور بخوره بعد نقشه بکش. نقشه؟ کدوم آقا ما نقشه داریم سلام علیکم شبتون بخیر. خیلی ببخشید وقت شب مزاحم شدی. من فرشاد هستم از آشنایی با شما خوشوقتم. ولی <تصفح> بلغور አልقرانم ما نقشه داریم. نقشه خیر ما نقشه نداریم. شما با به خانداداش زندون تشریف داشتید؟ نه خانم من از اون آدمون نیستم من نه تا حالا پام به زندون رسیده و نه قراره برسه آفرید شام که نخوردیم نه نه شب کریم و فرشاد دور سفره نشستن و زهره ازشون پذیرایی میکنه خانم رازی به زحمت نبودن به خود انقدر ماشاءالله عجب خوهر باسلیقه کریم با, با انگشت اشاره فرشادو تهدید میکنه عجب خوهر باسلیقه ای نداری کریم به زهره اشاره میکنه که از فرشاد فاصله بگیر نه آخونه این نویزه آدم بفرمایید خواهش میکنه مرمان دستتون تشکر میکنم قیمه غذای مورد علاقه منه راست میگی بله بله. اتفاقا منم قلمه رو از همه قضاها بیشتر دوست دارم بفرمایید خواهش میکنم بکشم براتون لطف میفرمایید الان داشتم به کریم جان میگفتم که باید قدر خواهری مثل شما رو واقعا بدونه چه فایده مگه گوش میکنه کریم جان گوش طول حرف خواهرتو دیگه اصلا عین خیالش نیست دو ماه بیرونه شش ماه زندون تازه به من گیرم میده بکشم بله من نظرم اینه که آدم های خلافکاری که زندان میرن حق ندارن به خوهرشون گیر بدن آفرین واقعا شما چقدر خوب آدم و درکی می‌کنی. بلد کرده بعدا دیگه تو مسئله خانوادیگی درخالت نمیکنی یا. آخه بابا قاشق و سلادی رو دارو تو ماست سوالاتی نبود و مقصد تمیز بود الان ماستی شد ماستی میشه من بگم تشکیه نستان قرار همه برم تو قاطی بشم و هم نگر چه بامزه بفرمی مرسی راستی آقا فرشتا شما کارشون چیه من دانشجوی فوق لیسانس سنائی غذایی هستم واحد جنوب چه جالب اتفاقا منم حقوق قضایی میخونم نه آره واقعاً چه دونه؟ شو تصادفه و خوضه واقعاً واقعاً خلی دوست دارم که توی فرصتی بشینیم در مورد واحدای درسیمون با هم صحبت کنیم حتماً کریمم باشو با هم سه ستایی صحبت کنیم کلیفون داره زنگ میخوید نه برس کنیم کریم موبایل فرشد و جواب میده الو بفرمین بله بله برای اینجا کریم موبیلو میگید علا سلام احوال شما برم. من بله من رفته بودم لواسون همون باقو ببینم باقی بسیار بدی بود بسیار بد اصلا در شعن نبود پورد علف هرز و جانور و اینجور شده خیلی بد و و بله من با این دوستمون رفتم که آقای اصلا که بنگاه دارن لباسون الان در حدمتشون استیم زهره بعدیش میاد و سرشو اون میکنه خب گوشی یه داریم مادر مادر بله بنگاه داریم بله <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> بیا من به تو دروغ میگم عزیزم کریم و با کنجکاوی اونو ایدان کنم باشی بسیشاله صحب میبینم امت او کن اول تو قطع کن اول تو قطع کن اول تو قره. اول تو خانون شسائه کوفی چند وقت نام زد کردی؟ چه نام بابا بلش کن دست رو دلم نذارم نه بگو منو خواهرم میخوام بدونیم بگو بله بگین اگه کاری از دست ما برمیاد بگیم براتون انجام بدین در این مورد از دست هیچ کس کمکی بر نمیاد و مثل آدمیم که در چنگال یک دیو اسیر شده آخی چرا سادگی خانم صداقت 300 میلیون تو من چیک دادم دست خانم الان پاشو گذشت رو خیر من مجبورم میکنه که باهاش ازدواج کنم آخی آخه چرا همه این اتفاقا برای آدمای صادقی مثل شما میافته واقعا چرا؟ واقعاً؟ کریم و فرشا توی رخت خواب دراز کشیدن نه فرشا با موبایلش با رعنا هفته اولتو اولتو کریم به نشانی انگشت اشارش رو تکون میده اولتو باید قاعد کن میخواییم بگیریم دیگه اه. اول تو اول تو بس همینه من نمیخوایم زم بگیرم منم هم نمیخوایم زم بگیرم. این مسخره اروازی هست چیه؟ فرق داره داستان داره چیه؟ طرف مایداره دیگه یعنی بد مایدارها خونه خودشون ندیدی صد هزار متری. اه اصن آره ليش کمی مخاط زن تو بشه. راستش من این مشکلی با زنه دارم. ظاهرا اینجوری که به نظر میاد من مردم رو خوب درک میکنن. ظاهرا تو درکشون کردن شولد میشم نیفتن گردنت. خوب درکشون نکن. دست خودام نیست. تو کلامه باشون رفزن دق برکشون بکنه. خب یه جوی درک نفهم میفهمن نو کسا. از اون چیزی نیست که به شا قایمش کرد میفهمن چشه بدبختیه خیلی بدبخته تو این خونه درک اضافی بکنی من میدونم دونم اتو. باشه درک نمی کن. دیگه درک نمیکنم کنم بعد از خروکاشی اتحاد جامحیر شوروی اعضای شورای سلطنت برای رسیدن به قدرت به جان هم افتادن شوراب به چند گروه و دسته تجزیه شد کار هر کدام از این گروه ها این بود که به گروه های دیگه ناسزا بگن و گاهی هم به حاکمان روسی گالینکوف ادعا کرد که گم گمشده تزار در تهرانه اون گفت در ازهای پس دادن اموال مصادره شدش در موسکو حاضر محل اختفای میراث تزار رو در تهران به مامورای کاگب نشون بده اما بعد رفت و دیگه هیچ خبری از اون نشد صبح حیات خانه کریم زهره میگم اوزا خیلی برد شده آه هم چهار روز که میمونه اون تو تازه میفهمه چه خبره شیش ماه ها؟ چهار روز نه 6 ماه خیلی خب والا خطه به مشماش نزد مته به خشخش بابا حرف رو به چه میگم اوزا خیلی برد شده نهی پرسی چرا اوضابط شده؟ چرا اوضابط شده؟ آخه این اباخه حقی رو برمیدارن میارن هم از این بچه قیلتیاییه که سر دختره ای مردم شیر مالیده عجب بله اصلا به قیافه طرف نمیاده یارون نگاه میکنی کیف میکنه هر کاری بگی ازش برمید چای تو برای شیرین کنم گروپه بر چایی دارم به درس زندگی میگم با حرف چست میگم به این بچه قرشتی یا و موقشنگو اعتماد نکن اصلا ببین کلویون به مرد جماعت اعتماد نکن مردم موجود نخواه خواهن و حوصلازیه میشین صبح بخیر صبح بخیر خوب خوابیدین نه بابا با این صدای خورخور کریم خانم مگه میشه خوابید مرد و خورخورش دیگه واقعا که براتون چای آوردم. قربان دستتون. خیلی ممنون. شما واقعا مهمان نواز هستید. نه تو رو خدا نگین میگم شما واقعا مهمان نواز هستید. کریم خواهرت واقعا مهمان نوازه. همیشه اینجوری نیست. امروز نمیدونم از کدوم دنده بلند شده که آلش خوب. اصلا بهشون نمیاد این چیزا. آقا شو چایی رو داره میزنه تو پیاره. چای که تمیز خب قاهره ما رفیقای ما رو که می‌بینه انگار شوهرننمون رو اصلا اخلاقش خوب نیست برای اون دوستای های عراضه شما معلومه که اخلاق خوبی ندارم ایشونو با اونا مقایسه میکنی ها. ما ما ما. آه. ایشون معلومه که درک بالایی دارن ما اصلا درک نمیکنم ما اصلا درک نمیکنم روز حیات خانی کریم کریم در حیاتو باز میکنه و خواهش را میدازه شخصی مخصی سوار نشی خیله خب بابا بایسا پول داری؟ آره خیلی نمو امراض باشی همین؟ نه این این که مال خودم خیلی میگم کاش شام تشریف بیارین هممون دور هم باشین دوست دارم خیلی با, رای... با, با کار داریم اول بله. امشب کار داریم ان شاء الله فردا شب خدمت باشه پس من کریمو میسپارم به شما. حواستون داشته باشین که دوباره فیلش یاد هندستون نکنه. کی حالتون منو میسپرید هستین؟ رو چه حساب برای اینکه ایشون آدم قابل اعتمادی هستن. تو از کجا فهمیدینو از چشاشون. چشای آدمو دروغ نمیگن. به فرشاد چشم باره میره. برو برو دیر نشه برو خدافظ. خدا. خدافظ خدافظ. خیلی خوشحال شدام. واسه ما سربزنید. فرشد و عقب میکشه و در تالار بزرگ اده زیادی داخل جا. تالار هستن من همیشه از دیدن مناظر جذاب هیجان زده میشم منم مناظر جذاب خیلی این آینه کاریار ببین خصوصا اون تراشای انتهایی به نظر فوق العاده نیست عجب تراشید آقایم که چه تراشی من میدونستم که ما در اکثر و بقیه با هم هم هستیم استیم ببین که اینجاست کی اینجاست بدری اسمشون ببریه نه درستور بدری بدری سلام, عزیزم. سلام بدری جون من مطمئن بودم تا رو اینجا میبینم با مگه میشه من عاشق استرابینسکی هستم این من خوب مرشد اونکایش ویبری میره معرفی میکنم نزدیکترین دوستم آقای دکتر حسابی بله منم بدری هستم خوشحالم از دیدنتون بدری من هم خوش وقت میگم که یه شب شام حتما باید تشریف بیارین خونمون خوشحال میشم دویزور نمیتونم دیان در چرا؟ به خاطر که انشون خیلی سرشون شلوره خیلی متاسفانه من باید زود برگردم اسپانیا ولی سفر بعد حتما خدمتون میرسم خیلی, خیلی, خیلی. میگم موافقی من برم یه کافی بگیرم بیام میخوای منم بیام نه عزیزم شما چرا کافی میخور از اونا دور میشه با موبایلش ور میره و اونا میکنه پس از پله ها پایین میاد رهنا با دوستاش اونجاست موبای... فرشاد با موبایلش زنی میزنه و متفجیه اونا نمیشه از پله ها پایین میاد موبایلش رو تو جیبش میزنه به طرف بوفه یه تالار میره دختر زیبایی فشار شده به طرفش میاد و کنارش میسته. لیوانش رو از سر آب معدنیش برمی‌داره، کمی آب بره خودش می‌ریزه و لیوانش رو تو دستش میگیره و فرشادم زیر نظر داره. فرشاد متوجه اون میشه و نگاهش می‌کنه. میگم ما قبلاً هم دیگر جایی جای ندیدی؟ چرا؟ کجا؟ <تصفح> من گیسو سوام؟ پارسال قرار بود بیای خستگاری مدیه ها قیبت زد یادت نمیاد؟ چه خوبی تو ما خوبه فهمیدی چه بلایی سر من اومد من یه تصادف خیلی ناجور کردم شیش ما رفتم تو کما پشترش از کما که در اومدم حافظم رو کلن از دست دادم خب یعنی اصلا دختر لیبان آب تو صورت فرشد میپاشه لیونو پرت میکنه تو صورتش میره. بعد صورتش رو پاک میکنه و خطاب به دو نفر میگه شو ای دیگه؟ آقا این نسکافه های ما حاضر نشود. شب نیم کنار خونه ای میسته. همون زاربه اول فیلمم داخل ماشین دیگه منتظره. کریم از ماشین پیاده میشه. به سمت در میره از بالا و پایین در حیات داخل نگاه میکنه زارب کلاه لبیدارش رو سرش و از ماشین پیاده میشه فرشاد با فندونه نسکافه داره راه میره که یهون هون آمزدش میبینه میخواد در بره که رنا صداش میکنه فرشاد بد وقت شدم موشی بالاخره پیدا کردم. اینجا چه کار می‌کنی؟ میخواستم سورپرایزت کنم. واسه چی دو تا اسکاف خریدی؟ این یکی مال توئه. راستی دوستامو بهت معرفی کنم. کیارش از بهترین رپرای ایرانه. متأسفانه تا حالا هشت بار خودکشی کرده. برکت آخرین خودکشیش امروز صبح بوده و ما دو ساعت پیش از بیمارستان آوردیمش اینجا. دوست دیگم باران شمیمی. اون یکی از بهترین تران و شاعرای حال حاضر ایرانه واقعا یکی از بهترین است. و یک استعداد شگرف در زمینه ی تاعتر محزا صدف خیلی خوب آخه این تا هفته پیش اسمش محسا بود جان چهارشنبه هفته پیش بود صبح که از خواب بیدار شدم فهمیدم که از این لحظه به بعد گسم من صدفه اشکی حق نداره من محساس صدا کنه خیلی با حال این چیست؟ نسکافه میکنی؟ نه نه عزت خیلی باشتمون گفتون میگم یه سوال باران اسم دختر نیست؟ نه اسم دختره؟ نه باران اسم دختره؟ نه نه من یه ترانه گفتم شما نشنیدیم میگه که باران به وزید و زمین بارور شد بارور مذکره دیگه نه من یه دستشویی برم با زد. اب خونه یه کتی کریم لایه در رو با پیشگوشتی باز میکنه و داخل میشه در رو میبنده و از تو پذیرایی به طرف مجسمه اقاب دو سر میره اونو میبینه اما بر نمیداره از پله ها بالا میره در اتاق خواب و باز میکنه مجسمه اقاب دو سر دیگر رو میاره و کنار نرده میذاره و وارد اتاق دیگه میشه حالا کتی در تالار این زمینه دنبال فرشاد میگرده اونو میبینه و به طرفش میره چی شد؟ کجا بودی بابا؟ یه ساعت من دارم دنبالت میگردم من همینجا پیش بردری بودم گفتم دزدی داره دکتر. ای داده داده من, من کی می‌دازم؟ چه بردری که کثیف کی منو می‌دزده آخه. کافی شد. چه او کافی چی زنگ زد دکتر کاخال. بعد یه مریض تصادفی تفرقش خورده بود رفت اتاق عمل داشت میگفت عملش چجوری؟ اینو مثلا کافی کافی اصلاً خาสادی؟ آره تصادفی. نگشون جراحی پروستات نیستن. چرا؟ چه پروستات طرف مو برداشته بود تو تصادف خیلی زیرایی خونه کتی کریم از تو پذیرایی مجسمه اقاب دو سر دیگه ای رو میاره و کنار اون یکی میذاره نفسی تازه میکن و داخل اتاق میشه الان تو برو پیش بادرنجون من دو تا کافی میگیرم میام آها میخوام الان بیام نه همین چرا من نمیدوزم خیالت راحت میشه چیز <تصفح> کنم موش بشو نه مع ما... چا برو بیا می ره آدیوس سوختار کریم بر کلید برق اتاق رو روشن میکنه این برو اون برو میپاد داخل میشه چی یه رنگ دیگه از مجسمه آقاب دو دوسر اونجاست به طرفش میره میخواد اونو برداره اما اونقدر محکمه که نمیتونه وقتی پایه مجسمه رو تکون میده ناگهان دری که روش قفسه کتاباست باز میشه کریم نزدیک در میشه و با داخل اونو نگاه میکنه که یهو سرایدار میاد و میگه ببخشید کینو جا گذاشتی؟ چاخو دارم ها من هم شکل الکتریکی دارم از دورم عمل میکنه بخانی امتحان کنم ای اینو چند خریدی؟ خودم نخریدم پسرم اما از تایلند برما آورده میدی یه لازم من محله معامله اما معامله؟ معامله دیگه معامله کار نیست بفرمید بشینید بفرمایید. درسید. من در خدمت شما اینه میدی به نه مال خودم شما به سر نوشت اتقاد دارید حرف حسابه چیه؟ هفتا سی خوبه؟ هفتا چهل دارید از چه سر می صحبت میکنی؟ در جه هرچی که تونی شولاخیه یه چی تو میگی یه چی من یه درمی همونی زنی با هم کنار میگی. من کاری به کار این سوراخ ندارم به شما هم می میکنم از خیر این سراخ بگذاری نه من صرف نظر نمی کنم ولی ولی حاضرم با توانیر کنم چیکار کنید؟ توانیر یه جوری با هم کنان می دیگه اگه خواستید برید میتونید این رو غابارم با خودتون ببرید ولی نه ارزشی ندارن فقط برای ردگم کردن ساخته شدن بس اصل کار این سراخیه تقریبا درست میگه ولی این سراغ نیست یه تونله خیلی هم دویله اگر شما بری توش بعدش دیگه اون کریم سابق باقی نمیمونید فرشاد نسکافه گرفته و داره میره که بله دوباره رانو دوستشو میدینه <تصفيق> راضی به زحمت نبودیم نام شده رانو زحمتی که نیست ممنون شما بفرم. خوب شد دیدی بچه ها شما یه دقیق بایستیم پرشت بیا باران اسم دختره نه دلش گام ببین یه زنه هست آشناس، از این پولدارای تازه دوران بزده الان قرار کل طبلاه منو یه جا بخره فکر رو الان از بالا دیدمش میخوام بهت معرفیش کنم. اسمش کتیه کشی اونا عزیزم چطوری عزیزم تا اونا روبوسی میکنن فرشا در میره خیلی خوشحالا میبینم گردم بنده خوشحالا خانون چه مانچه زیبای آبی درباری خوستم نام زدم بهت معرفی کنم نام زدم و پرشاد پرشاد جان جالب بنامیخواستم دکتر حسابی رو بهت معرفی کنم همین هم پشت سرت بود دفتر حسابی کیه؟ از اسپانیا اومده نمیدونم خود رو رفت واو اسپانیا ازم کچکشتیه انوش انوش جان پرشاد جان دکتر انو آقا مهندس فرشاد دکتر مهندس شان فرشاد شا یه باشکی زیر پله نشسته و داره شماره میگیره شب تونل ببقیقا. کریم از پله های تونل ببقیقا. پایین میاد مستقیم میرین هر جا دورایی دیدی میپیچین دست راست باشه باشه نهبت باشه <تصفيق> <تصفيق> آقا سب کن سب کنی چرا آقا به میشه در روش میبنده کریم داخل تونل تنها میمونه سوت میزن و آواز میخونه تا نه ترسه گنج قارون نمیخواب مال فرابون نمیخواب کریم ترسان و لرسان چرا قوهشو به اطراف میگردونه دوربرو نگاه میکنه دیواره ی تویل زرد زردرنگ داره سردرهای برودش نمیدونه رس خوندرهای آواز خوندن دور و دورتر میشه بهر ما بوشه نسه نسه پذیرایی خونه کتی زارب آدامس میجوه و اصله به دست داره داخل پذیرایی دزدکی را میره اطراف و خوب نگاه میکنه صدایی میشنوه توفنگش را سری نشونه میگیره اما چیزی نیست میست و منتظر نگاه میکنه شد جلی خونه کتی کنار ماشینش از موتور پیاده میشه. به موتوری پول میده و اون میره. فرشاد موبایلش رو از جیبش در میره و شماره میگیره. خار بیه؟ جان؟ یعنی خوب بود؟ خیلی جان تو. خیلی. تو گواینامه داری؟ گواینامه که مصد نیسانه. وح؟ ناگهان صدای تصادف موتوری از دور شنیده میشه آهی میکشه و کریم داخل تونل همینطور جلو میره و آواز می <تصفيق> شد همون جایی که از موتور پیاده شده داره با تلفن حرف می زنه خوبی من زدم ببرم برای چی کرسی برای چی برای اینکه خب خب ب... ببینم اصلا امشب شما گم می به با اون باران هی hey, کجا می رفتید خسته شدم تمام شب من داشتم دنبال شما می گشتم ای نه لازم نیست خرمبت برم نه من امشب بنزی کافی تغییر شدم نه ببین فکر کردی نمیدونم من برای تو کمم کم دیگه ببین هاششا نکنی دیگه هست من اون خجالت تو تو چشات دیدم اونقع که داشت من به دوستات معرفی می کردی نه دیگه هیچی نگو عزیزم خواهش میکنم دیگه هیچی نگو بذار امشب تنها باشم من احتیاج دارم که یکم با خودم خلوت کنم برای روی این رابطه بیشتر فکر کنم من کسی به صندوق میزنه فهمم فردا زنگ میزنه کریم زهره نفسزنان بیرون میاد دست شما درد نکنه هایشون کنن نه واقعا دست شما درد نکنه ببخش شما چجوری دفتیدید من فکر می‌کردم شما با بقیه دوسته عرازالا باشه کریم فرق می‌کنه آی, آی آی آی پا کردم آبا دیگه چگار میخواستیم بکنین اومدین اینجا دوزدی بی تربیتا. کریم کجاست کریم اون تو شب از لابلای بوتهای خشک روی زمین در آهنی مربع شکلی رو میبینیم در با صدای گوشخراشی باز میشه کری بیرون میاد دو کنج ساختمون کلیسا رو میبینه چرا قوهش رو برمیدار و از تونل بیرون میاد و به سمت در آهنی بزرگی که سردر هلالی داره میره دستگیری در رو با ضرب باز میکنه و داخل میشه اونجا کلیساست روی دیوار تابلوهایی از مریم مقدس، حضرت مسیح و حواریونش دیده میشه. عکس تزارم اونجاست. پایین عکس نشونه خانوادگی هزار یعنی آقاب دو سر توجهشو جلب میکنه. کریم به سمت در میره. ناگهان بغوشام میشه. در آهنی بسته میشه. کلیسا. خیلی همون در مربع شکل آهنی تونل فرشاد بیرون میاد و به طرف درختی میره و میشینه. زهرا میاد. زهره نیمونه و فرشاد به طرف کلیسا میره. و اینجا جایی در اومدیم. ای باجی شو شو این وحقله که دست و پای کریمو بسته و اونو دم در خوابونده و داره ازش اعتراف میگیره اعتراف کن اعتراف کن میگم میگم میگم برو دیگه برو برو شما بشه داشته بشی من نمی دونم از چی آمده می آره با خیلی که پس ایجا چیگاه می کنی؟ یارو برگاشت به من گفت خونه معتزدی ها آقاب دو سر همین همین همین معتزدی ها آقاب دو سر همین همین دست تو رزو زمین دشین برای بین تو رو درکرم ببین نه تو نصیبه ببینده نبین رو بکریم بخانگ الویس می شد بخانگ الویس می شد هاستم اینم راست میگی یا نه دروغم چیه؟ من هم اسکی ادم راست میگی بدون اینم بقا برو دعا کن ها؟ کلیساس برو دعا کن هلی عوصب بشه چه چی هست همینجاست بقاب دو سر ها؟ <تصفح> من میگه بازم داری دروغ میگی تو همین کلیساس از کجا معلوم یه در مخفی نباشه ها؟ تو خبر نداری؟ چه میدونم ولاخره مغور میاره یه کلیدی این چیزی فکر کنم دوباره مجبورم از دبش کمربند استفاده کنم فرشاد با صندلی محکم میزنه تو صورت زارب و اون نقش زمین میشه زهره میخنده زهره میشینه تا تنها به دست کرده باز کنه. ببینم کریم ببینم چجوری منو پیدا کریم ازو من برای توضیح بده آخه من چیکار میکنی؟ نه من رفتم در خونه یک زوره چجوری اومد اینجا؟ سر... نکنم اون سوراخی اومده باشه. آره اومد. ساعت چنده؟ بگم م... ساعت چنده؟ دادم سایه. ساعت یک؟ زوره تو برو بنش با این مرتی لنده رو وا اینجا. اومدی نجات. بنشو نمی‌خواد من نجات بدی. دهنتو ببند. مرد شور این زندگی رو ببرن. می‌خوام سال, سال اینجوری زندگی نکنم. برو کنارش ما هم نمی‌تونیم. بنشم اَه <برای> زندو حبس کشیدید حاز پوست کوله شده ده بیرون چقدر زندگی سخته. ای مادر من بمیرم زوره. بله. <برای> تو اینجا میگشتید چی پیدا نکردی؟ فقط یه نقاش اونجا روش آقا به دو سر کشیده. ا؟ خوب؟ بله همون پوش. هاشود تابلو رو از دیوار میکنه و میره چقدر این سفته. چاقو داری؟ آقا اون کجا بود بابا؟ چه میدونم حالا همه همصفای شما دارن خود دوستا کار میکنن. میدونی از آخرین خواستگاری که داشتم چقدر میگذره کی از با یه دختری ازدواج کنه که داداشش سابقه داره. خب دیگه گفتم این دفعه آخریه هم چه غلطی کردم. همیشه همینا می‌گم. آخرین دفعه فرق داره. زهره بجونتو این دفعه بگم میریم معش. یا توهه میریزم سر خلاص تموم. من که خدامه. چقدر بدبختم من. شانس ندارم این باقا که بابا نبینم اشکاتونو. دوباره بله. بریم امی... جونم چاغوتو می‌شناس یالا سوتام. از تو چاغو داری؟ چاغوم کجا بود بابا؟ آلو چاغو چیکا کا؟ رو ببینید. این تخته این پوش اضافه است. من فکر میکنم زیر این یه چیزی هست تو این نقشه گنج. وای من می میرم برای نقشه گنج. برو خودم من عاشق نقشه گنجم. بابا چرا دری بری داری میگی دست منو واکن. میگم این فرشاد کیه؟ من نمیدونم. سیویلش شکل کیریه. یه ینی گاکو میمیو نشه. اون که بیهوشه. آقا فرشاد زد فک مکش کش آورد پایین بله همچین زدم چی جی... این سوکس لحش کردم چی فرمودی؟ سوکس بچه قردی سوکس سوکس <تصفح> خیلی باهال بابا اوشگول سوسک آقا فرشاد خب سوکس درسته دیگه تو فقط شانس آوردی پاد به زندان وانه شده من خدا رو شکر نه تو حال پایم به زندان رسیده نه قرار رو برس. پاشود دوباره یاد زندان است با چند بار به پیشونی سر میزنه تا خاطری از آیا کس؟ بهت دبی نه. کریم. چون منه میشناسی؟ اینام که مامان و بابان. آیا کسی اینجا چیکار میکنه؟ چرت پرت نگی تو. ساپری بیهوش شو و تو فنجشو به طرف و نار نشونه میگیره. از این به بعد ها باشه وقتی یکی او سوکس کردی، اصلاشم برداری. مرب به طرفی کریم نیادو. اونو با اصلهش تهدید میکنه ببین ریشقه سنگ به نفتی که عرف بزنی بابا کن بابا من گم گمیدنم گم چی بگم اخی تو عکسندی که تو عکس نباشه من همزونمونی که این عکسی که جه چی من چه میدونم اخی نمیدونم هر رو به سندالی بستیم منو بزنی سر کار یه تو دیه من بله بگو افزم چیزی بگو. چیزی ندارم چی بگم؟ نه ما فنسام بگو بگو. تا باید به من بگی که با چی ارتباط داری. برای کی داری کار میکنی؟ یالا بگو ما که نه تو مزحت خالی می‌کنی تا آخر عمرت بزنی. نه نه نه نه. اگه میخوای کری با بکشی اول منو بکشی. کسی که بعدم نمیگه. نه بابا هیچ نمیدونه راست میگی. اول تو رو می‌کشام. می‌گی نه. نه! می‌ری میکی؟ چی؟ بزهره خانم کاری نداشته باش. به جای زهره خانم من بکشم. راست میگم و با اینو بکش. آره خب الان نمیزه. با اون سناری که تو صورت من زدی بهتره اول حساب تو رو برسام. تو بخوام. حالا من یه چیزی گفتم داداشش اینه منو چرا موقعم گفتم که منم دو و سی برش این آوردی؟ اولا این خودت. پس ما خواهر من چیکار داری؟ کار ندارم. تو غلط کردی برش تو چوردی. خیلی دقت میذنی سر من. دیگه پاش من خودم تا این نظر. از اونا فاصله میگیره و فکر میکنه عطل، مطل، توتوله گاوه حسن چه نه، نه، نستون یک زنه کردی بسون اسمشو بذار امغزی جمع کما با تو گیر دادی میخوای منو با کاشو امغزی منم تو گاوه حسنی، امغزی منم کجا بودن؟ امغزی. من. امغزی. من بودم؟ امغزی منم، امغزی، تو امغزی چی تو دور کلاش قرمزین خاچین و یه پاتو تو ورچین بابا اشتباش مردی بابا به همکزی بابا با همکزی هم... میخواد شوی کنه کتی از پشت اونو با تیر میزنه و نقش زمین میشه کتی خانم اما جورشیک اینا چجوری منو پیدا کردن؟ مسیو ژوژی، پسرش، پیرمرد، سرایدار و ایدی دیوونه‌ای، بلدی... خدا رو شکر چیزیتون نشده. من داشتم از نگرانی می‌مردم. قربون برم من مجبور شدم از این آس بزنم بیرون به خاطر یه بیمار چیزیتون گرش بوده. با منه؟ من اینجا ما وای خدا رو شکر. کارسیا. من اینجا جورجید و پیرمرد، مرد سر جسد زاره نشستن بازم آدم کشتیم بازم خون خون رویزی بازم کشت و کشتار دست شما درد نکنه. وظیفم بود ادهی به نشانی احترام به کریم هاشون بر میدارن و تعظیم میکنن و بارد کلیسا میشن مرد تنومندی رسد بود را به زمین میکشه و می بره اما جریان چیه؟ بذار بطیه ها رو معرفی کنم نیش ناسمشون؟ نه نمیش ناسی کنتس ولنتینا ترسکوبا کتیه کنتی؟ کانت رحمانوف سرایدار و کونت گوپرین گیره مرد منم گراندوک سفینوف هستم شما جاسوسی سیو جو رید کونتس کونت رحمانوف و گراندوک میرن و کنار بقیه روی صندلی میشیند دوستان عزیز اعضای محترم شورای سلطنت روسیه ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید من مکان مقدس کلیسای سندگار از گرد هم آمدید زهرون فرشادم اونجا نشستن تیور پشت محراب میرد و صحبت می‌کنه. همونطور که میدونید بعد از کشف حوییت خیانتکاران و خبرتین ها در داخل شورا با تصمیم شورا و برخلاف تمایل قدمیمون اقدام به استخدام قاتل حرفه‌ای برای حصف فیزیکی یک نفره دوستان اما آرشی دک کارین پیش از مگ اطلاعاتی در اختیار کریم و این جوزشون گذاشتن که منجر به وضعیتی فکر میبینید اعضای ارشد شورا در مسکو که از ابتدا در جریان امور بودند و بسیار هم نگران بودند سرانجام امروز بعد جوجید به کریم اشاره میکنه که بشینی و کریم میره و روی صندلی کنار زهره میشینی کریم توکلی گبزارتوره به اسم واقعی صدا نیکیتا ایوانوویچ رومانوف تو تزار روسیه بزرگ هستی. کریم با ناباوری برای خودش دست میزنه. کریم برای یه لحظه خوشگوش میزنه. چشمش چپ میشه از هوش میره و میفته آلکسی کوچولو از اون قتلهام خانوادگی جان بدن دو گلوله که به طرفش شلیک شد به مدال سلطنتی برخورد کرد یه سرواز بلشویک مخفیان بدن نیمه جان آلکسی رو پنهان کرد و اونو به نیروهای وفادار تزار رساند شورای سلطنت شایعی در مورد زنده موندن پرنسس آناستازیا بر سر زبان ها انداخت و توجه همه را به آناستازیا دروغین جلب کرد. آلکسای حاضر به ترک روسیه نشد و تا زمان مرگش در 1953 با نام مستعار در مسکو زندگی کرد. تنها فرزندش ایوان آلکسیویچ حاصل ازدواج اون با پرانسس ویرا کاندر تیفنا در 1937 به دنیا آمد پسر اون نیکیتا ایوانوویچ آخرین رومانوف در 1973 متولد شد. نیکیتا فقط یک سال کنار پدر و مادر واقعیش زندگی کرد نیکیتا دست بده من زیروری پسرش داخل کلیسا موسیو جورجید، پسرش، فرشاد، کریم، زهره و سرای دور و به اتفاق بقیه نشستن و کتی برای کریم چاییم تا هفته دو تو مسکو زندگی کردن تا که به ردشون رو پیدا کرد اما قبل از اینکه که دستگیشن ما تون دستیم تو رو نجات بدیم و بیاریم جایی که هیچ کس فکر نمی کرد زیر گوش اتحات جمعی یعنی ایران شیطه ی نیکی یعنی شما از اول مله ما تو رو خانواده توکلی که مرد اعتمادون بود سپردیم باید هم به محله مستقرس بودیم که همیشه موازبت باشیم یعنی منم پرانسس هم نه خیر شما دختر خانواده توکلی هستیم او تشند شما از یک پرانسس بر ما بیشتره پدرخونده و مدرخونده خیلی دادم خوبی بودن ولی تو با دوستای نواب گشتی دی سمت کار خلاف. سن کردیم کمکت کنیم ولی دست از کاری خلاف نمی حقیقت حقیقا چمین که خلافکار با استعدادی نبودی اگه دست خودت بود تا آخر عم تو زندون می موندی. ما همیشه مجبوریم کمکت کنیم خب چرا اینو زودتر به من نگفتیم مردم روسیه همیشه خانواده رومانوفو دوست داشت حکومت هم خطر رومانوفو همیشه جدی گرفته برای اینه که جونتون همیشه در خطره همه چیز حاضره. پاشه, پاشه بریم. خیلی کار داری. بناشه. بناشه خیلی همه به طرف سالان کلیسا میرن کریم دستش رو روی محراب میذاره سرایدار در صندوق قدیمی رو باز میکنه ردای کشیشی رو از توش بر میداره روشونه های کریم میندازه و خون مرتبش میکنه پیرمرد گردنبند برونز گردی رو میاره و به گردن کریم میندازه حالا دیگه کریم آماده است اول موسی و زانو میزنه و بعد بقیه زانو میزنن زند اما فرشد و ظهره ایستادن و با تعجر به بقیه نگم میکنن و لبخند میزنن انگار باورشون نشده یکی یکی دست کریم رو می و میبوسن و میرن کریم تو لباسش معذبه و این پامپو میکنه که کی این مراسم تموم میشه مردو و سرایدار و از روشونه های کریم لباس و گردمند و بر میدارن و توی صندوق میزرن. کیم نفسی به راحتی میکشه. جلوی یادر کلیسا مسیو ژورجی کریم فرشاد و زهره ایستادن. اون یونجام کنیم بریم. دوستان با تزار خدافظی کنیم مینی دم در منتظره. ولی من دلم شدید واسه اینجا تنگ میشه. منم همینطور. ما یه جای بریم؟ یعنی چی؟ روسیه دیگه روسیه ناسلامتی تهزاری ما شما رو روسیه هم نشسته شما تشریف ببرین حکومت رو دو تقدیم تقدیمتون کنه بره نمیده معلومه که نمیده یعنی چی؟ عوضا مساعد بشه باید ثبت کنی تا عوضا مساعد بشه من مطمئنم که عوضا مساعد خوب خب شاید نشود میشه. اینا رفتنی هست من روزی رو میبینم تو تو مسکو تو روزیشی هزاران نفر تاجگذاری میکنید. امروز بعد شب کنیم بابا اینا وعده سر خرمن الان به ما بگو تنقیق بمون چیه؟ الان میرین زندگیمونو میکنید. یعنی چی؟ یعنی همینجوری خوش که خوش بی پول؟ مجموعه جوارات سلطنتی خانواده رومانوفا یه گنج واقعه. به به کجاست اون وقیم این سلطنتی؟ سن پترزبورگ سن پترزبورگ سن پترزبورگ, پترزبورگ. البته خیلی دنبال اون گنج گشتن که. من اومدم اومدم. اما اگه سلامو رفتن نکردیم ما میگردیم خاطر بجایف خب عدقل یه خورده چیزی بده ما از خوب آلاخون خونی در بیان حوضای مالی جپه سلچنکتی روسیه اصلا مساعدی عدقل یه ست من چیزی دستی به ما بده فردا گاتا میپذیم منتظرتم موسیو جورجی تو بقیه تو خیلی ملبوس میشن و بیا من یه پیشنهاد دارم بیا یه شیرنی تزاری تو به ما بده الان کل پاچه یعنی حالی میده اه اه شد ما از اینجا ها مونده هم خونه کهتی بارو بابا تو هم آه... روز گالری فرشاد به باران شاید. نزدیک باست. میشه روش رو بر میگردن و فماری. یه مشت محکم به صورتش میزنه باران نقش زمین از ده. میشه ده. از ضربه ای که بهش زده دستش در. میشه لباس تو پوش میریم خونه بایستا ببینم این شرف داره احمقانه یکی میکنی چه کردم اگه زدمش حقش بود به خاطر که غیرت دارم ناموز دارم اجازه نمیدم زنم با یه مش آدم نرخر غریبه بگرده در این محیطای کسیفه هنری بیا بریم خونه برچه تو تیزارش رو سی بیلا رو روز داخل ماشین کریم داخل ماشین داره بستنیخی یخی میخوره. عبروش رو یکی ایکی بلو پایین میندازه فرشاد بهش نزدیک میشه کریم از بستنی خودش به فرشاد میگه آه چگاه کریم یا روبا خلاص خلاص. <تصفيق> خلاص آبه تو با خیلی جواب درد گفتم به ترکی بیا بشی بیا بشی شیری نشو بده آزاد شدیم مام عزیزم، شما یه شبیت خیلی شدی یه بستن شلوار من دی. ای چه شدت وگیرشی که که دیروز خوردی. ما که 2500 میلیت روستیه دهنش میزدیم. یه پای ماشین خالیه. دهنش میموند ماشینو گرفت. نه کند دادن. یه نفر سیبی پایش میزی زحمت رو تلویزیون شلوار کنی. پاپا بسیار. هیفه. ایمان بابا برای نتیم چی کار میکنه؟ آقا بیا این آتاش قلاتو بردا میخوام بیا اینم میگیر اوه اوه درد داره یه وقت افروشیش چرا نه افروشم آقا سورافسونبه دارم پول دانشگاه زهره رو کی میخواد بده میگم حالا که پک و پوزت معلوم شده یکم شکل باباتیه خدا رو رحمتش کنه ولی اصلا به فکر بچش نمیشه چرا دیگه می‌خاست چیکار برات بکنه از از کاگبه داده خب دستش درد نکنه ولی بعدشی. اون رو به آسرشگاه سالمندن روس مقیم تهران نه پولی نه چیزی آقا میتونه سخیل گنج افزانش ای یک خورده با سمون میزش نیجوری به پی سی ولی الان که میگی به نظرم درست معلومه قیافش ملمادم مزفف بغیراتیه هرتی که بابا ما ولی ولی دوستت داشته نگاه، چی نوشته دیدار به روز قیامت نیکیتا اسم کلیسای روز قیامته اسم این نه بابا این کرملینه این چیخای کلیسه اصلی سن پترزبورگه اسمش روز قیامته جورجیک کنگو خب اون این یعنی که دیدار در کلیسای روز قیامت نیکیتا یا مثلا بیا به کلیسای روز قیامت نیکیتا بین بده من بهت گفتم رفیق رهنا رو یه مش گذاشتم زیره چونهش فک کشیه برشاد اونجا آره هوا هم خیلی گرما خیلی. راحت چل چل درجه است راحت به نظرم پنجا درجه میگم فکر نمی کنی نیکیتا اسم دختره حرف موف نظر نیکیتا اسم دختره آه. خوب ماشینی بوده آقا بار بریم در ماشین قلف میکنی؟ در ماشین چه کار نمی‌کنه؟ قفل چطور؟ چی اینا اتوماتیک خودش قلف میشه. برنامه‌چه؟ هیچی من که راستش میرم سینما یه فیلم ببینم، یه خورده از این اولوای گنج اینو بیام بیرون، بیا بریم. نه بابا این گنج رو منم از کار زندگی انداخته. بعد من روی پایان نامم. کار کنم محلتش داره تموم میشه بهت گفتم من دارش آره فوقم با زنگ بزن دیگه خورمان برم به زهره سلام برشون زهره خانم <تصفح> نیکی غیرتی شهره ما خدا حافظ در صندوق اقبو میبند و با ساک و چوب دستیش نیزوره و میره تریم در حال دور شدن بر میگرد و هی به فرشاد نگاه میکنه و یه ها میدوه و میره داخل هواپیما کریم شما داخل هواپیما خوابه هواپیما پر از مسافر مزوزو. بلندشه مم. تک تک مسافران رو نگاه میکنه ای ای ای فرشاد اونجاست به طرفش میره آمد. زاره آمد. تو ردیفه جلوی هواپیما نشسته با همون کلاه و عینک دودی آقا محترم لطفا کمربندتون رو ببندین صندلیان به حالت اولیه برگرد بله. حالا سی نه. شما بودی؟ <تصفح> من که بله بله. اینو واقعا خطرناک نیستا یه دکتر حسابی حساب هست واقعا دکتر حساب من هیچ خطری نداره خانم اینا شایعاته همه بس. اگه خطرناک بود من مادر خودم که لیپوساکشن نمیگردادم که خفن جدی میگه من حالا ان رسیدیم سن پترزبورگ من از شر این کنگره جراحان که خلاص شدم میبرم اونجا حسابی میگردونمتون و بعد یک کلینیک تمیز لیپوساکشن میکنم ببینید چقدر بی خطر واقعا خیلی من شما هم لوط هستم. من خیلی علم هستش که سرپای انجام میشه یه دوستی داشتم به اسم دکتر رامون کاخال. ایشون پروستات رو سرپای جراحی میکردن. چی شدن ایشون؟ ایشون مردن طفلاق. در واقع امروزه خیلی شماها تا روی پایانامت کار میکنید. ببینم من بهزار توضیح بدم بهش توضیح بدید. اومدم شما بپرسید. شما خب حالا بگو چطور؟ یه قاتل حرفه‌ای وقتی کسی رو می‌خواد بکشه و بهش چلیق میکنه. اول مطمئن میشه که جلیقه ضد گلوله تنش هست یا نه. دیدار بسامپیتر بود. ازیز و رادیو فیلم خسته نباشید. با هم فیلم سان پترزبورگ به کارگردانی بهروز افخمی رو شنیدیم این برنامه حاصل زحمت این عزیزانه آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار جناب آقای فرشاد آزرمیا تهیه کننده و بنده فریبوت واهری که اجرام تنظیم این فیلم رو به عهده داشتن پیروز و سربلند باشین و خداییارو نگهدارتون